آوانگاه بنام ارمس ده بخشاینده بخشاوه اشکار مهربان من صبح و پیروز گرباد، می نویم ایران داور هزار گوش بی ور چش راس راس داور تنج تنج داور شناو ترا و ریمز داشم بو استو سو استاوس تیو استار و آتشا اشم به او و هیش تماصی وش تا آستی وش تا ماوی هیات شایی وش تا آیا شم آسم و و از و بردکش شیرت وی نسناوی و صحابان که بیسی آوی چشانه شیرت و آوی چه و احمای چشنات رای چه فرسستایی چه میتره وروگا یوی تاییش هزنگ روگا و شیبهی بری چشمنو اوخت و نامنو یزتر آمنو خواست رای شنات رایی سنای چه و احمای چشنات رای چه فرسستایی چه یتا هو بریز آتا فرام روته یتا راتو چشاب چیده چه فراشه و بیز بام راتو آهورم از دام ما شبانه ما شیراتون یز میده زر توست را ما شبانه ما شیراتون یز میده زر توست را آشانو فرا بسیم یز میده همیشه از پنته آشانو یز میده آشانو نام بن کوی سوراس پنتاو فرا بشه میده است و تو منا خیاوف چه پنوت مم رتبام یز میده یه توش تم هنگامی که می‌شدم به شهرت باهم این سعی است که مجدب می‌شدم و شانه شهرت بر تو فریت می‌زمیده. هوا نیم شهرنامه شهرتون می‌زمیده. حاوی تاو تا یاس نم سرام هفت هنگ هاویتی مشابه نم یزمیده. ساوان که میسم چه مشابه یزمیده. عید یا منم یشی مشابه نم یزمیده. اما بنتم برتر هاو جنم ویت بهش هم ویسپت بهش او تاو راینتیم ویسپت بهش. تی ترندم یو پامو یو مذهمو یو فراتمو زوزی زیدی ترومان پن ترم پنچه گاو تاو میترم چه بارو گاو یاوی تیم یزمید رام چه خواسترم یزمید ویس پیرت مایس ناوی چهد وهمای چشنات رای چه چشن ویسیم چه, چه شمنم اشیراتوم یزمید میترم می وارو گاو یاوی تیم یزنگر گاو شه بیبر چشمنم افتون آمنم یزتم یزم ایده رام خواسترم یزم ایده ما آتر مور مزده پوترم اشبانم اشیراتون یزم ایده هز از آترم هز ایو یا اینگهنم حیمت برس ماشایف رسترتم اشبانم اشیراتون یزم ایده اپام نبتارم یزم ایده نیرین سنگم یزم ایده تخمم داموی شعوب منم یزتم یزم ایریستنا موروان و یا وشان prezentem وشاییون راتون برزنتم یزمیده یی محور مزدام یو عشی اپنونتما یو عشی جموشتما ویس پس رو آزرتون شتر ویس پچه وشتر, وشتر, چا وشتر چا یا ها تا اوروبه تا تا چا یا چا چا یا تا آه و می آیم تا را توش شاهد چیده چاو من کوش یا اوتنه نام من کوش مزدا چه حورا و دریگو بیاد یاست چه بم چ اوج از برای چه, چه آفری نامه میرای بر رو گا و یای توچ از این گرنگا و شا ب برای چچمن و اوخت ونا وویت تعیام من و خاسترام و تمسی مشته آستی، مشت احماایی یاشای بهنشناهایش احمای چخوا ن مای تن و در و تت تن و بو بوار احمای تن باورهرم، اما ایشتن پاروش خاطرام مهمای اسنام چیتر از این تیم مهمای در قام در قوچ تی مهمای و ایشته و شام راوب را این گرم بیش فخاطرم و او ایشته مسیوشتا عرضیم شته ما ای حیات شایی و ایشته آیشم هزینگرم بیش از نام بیبری بیش بش نام هزینگرم بش از نام بیبری بیش از نام هزینگرم بیش از نام از نام آشم و او ایشته مسیوشتا عرضیم شته ما ای جسمی آمین که مزدا، جسمی آمین که مزدا، جسمی آمین که مزدا. ما ایوتا آوشتای ور ای آو زای برهتر آن نیا برزد آو تای تا بنتی آو. تا شاپرته تو، شیخ زاو تیزر ماونای یک کار نیزر ماونای درگو خزاو تای آشم بومش نماسوشتای آوستی وشتای ماوی یات شایی بمشتای آشم. پیروز باد خروف و ابیجی وقتی نماوز پیروز باد خروح حوی جای وحدین مازدی اصنان پیروز باد خروح حوی جای وحدین مازدی اصنان پیم شای آسفندان احکام بادیدون بادیدون تجبادشان احکام با اوه ایش دا مسیح اوش دا احماییت شایی با ایش دا یشن